سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه دوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على الطيبين والطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارض اللهم انت السلام ومنك السلام و لك السلام و يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام علیکه ایوحن نبی و رحمت الله و السلام علی الأئمة الهادین المهدیین السلام علی جمی انبیاء الله و رسوله و ملائکته اجمعین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین السلام علی, علی امیر المؤمنین السلام علی صدیغت شهیده السلام علی الحسن و الحسین شباب اهل الجنه اجمعین السلام علی ابن علي الحسین زین العابدین السلام علی محمد ابن علي باغر علم النبیین السلام علی جعفر ابن محمد سادق السلام علی موسی ابن جعفر کازم سلام و علی ابن موسی الرضا السلام و على علا محمد ابن علی الجواد السلام و علی ابن محمد الهادی السلام و علا الحسن ابن علی الذکی العسکری السلام و علا الحجتتنا الحسن القائم المحتدی عليك يا عبد الله وعلى على الأرواح التي حلت بسنايك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت و الليل والنهار ولا جاء الله آسر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي علی الحسين الحسین و علاه اولاد الحسین و اصحاب الحسین. آل الحسین عليه السلام، این خرجت لطلب الاسلام في أمة جدی. أريد أن أمر بالمعروف و عن أن المنكر و أصير بسيرة جدی و في و و این فراز از وسیتنامه وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه وقتی مسلم شد که دیگر امکان توقف در مدینه نیست، حضرت برای خروج از مدینه وسیتی تنظیم کردن به محمد حنفیه دادن که در اون وسیعت نام قسمتی این است با غید این نما که از اعداد حسرت این است و جز این نیست همانا من حسین خرجت و لطلب الاصلاح امت جدی ارز کردم اصلاح بعد از افساس تحقق مییابد همان گونه که معالجه یک انسان بعد از بیماری عنوان معالجه پیدا میکند حفظ سحر نگهداری سلامتی و حفظ کردن شادابی جسم را معالجه گویند زمانی معالجه معنا پیدا می‌کند که بیماری تحقق یافته باشد زمانی اصلاح نسبت به یک فرد یا در یک زندگی خانوادگی و یا در یک شعون اجتماعی معنا پیدا می‌کند که فسادی در شعون فردی و یا اجتماعی پیدا شده باشد اما این نکته در خور اهمیت است شخصیتی معصوم امامی چون علی عبدالله که جز به حق سخن نمیگویند چقدر این فساد مهم بوده است و این آلودگی در امت اسلامی تا به کجا ریشه دوانیده که برای اصلاح به قیمت شهادت خود اون حضرت و همه یارانش و آل الله تمام شود میارزد چون خود حضرت عملا این را پذیرفتند برای ریش یابی فساد عبد کردم یک اگر کسانی به ما شیعیان اعتراف کنند که شما شیعیان تون برخورد می حساسیت اضافه نشون می دهید میکنید در صدر اسلام اطحاب پیغمبر تابعین یاران پیغمبر در حفظ دین نگهداری دین تبلیغ دین اشاعه دین کوشش ها می کردن. مگر بعد از رهلت پیغمبر دین را به مصر و شام و ایران و سایر بلاد نکشندن مگر جمعیت یا مختلفی را به اسلام وارد نساختند چرا ما می گوید فساد، تباهی، آلودگی و تیرگی در جامعه اسلامی ایجاد شد که امام حسین علیه السلام حاضر شدند جان بدهند تا جلو این فساد را بگیرند مگر دین پیغمبر مگر کتاب خدا در آن زمان نبوده است و قدرت اجرای و نفوذ در میان مردم نداشته که این این گونه شیع فریاد می زند. جواب یک از نظر قرآن کریم که دیروز شروع کردم تکمیلش رو الله امروز عرض می کنم و دو از نظر روایات سه از نظر تحقیق تاریخی و تجربه از نظر قرآن کریم آیا قرآن بیان می دارد یا خیر که نه تنها در تاریخ اسلام بلکه در تاریخ ادیان این مشکل وجود داشته هست. همیشه بودن دشمنانی دانا، زیرک، آگاهانه در لباس نفاق و دوستانی جاهل و نادان دست به دست هم داده تعاویری را که قرآن کریم به کار برده است گاهی تحت عنوان اختلاف در دین و کتاب گاهی تحت عنوان تحریف دین و گاهی تحت عنوان کتمان حد که من نمونه هایی رو که دیروزر کردم تکرار نمی کنم، فقط تقاضا می کنم اون رو در ذهن داشته باشید با چند آیهی که امروز ارسا کرد، کنار هم بگذاریم و جمبندی کنیم در سوره مبارکه بقره آیه سد ای و ما انزلنا من البینات ول خدا من بعد ما بینات ول نات اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ قرآن می فرماید کسانی هستند به درستی که افرادی پیدا می شوند یک تموند کتمان می کنند می کنند می پوشانند نمی گذارند آشکار شود مگر در معنای کتمان این معانی در زبان فارسی نمی گنجد یک نمونه ما انزلنا من الذکر از بینات نشانی های آشکار از حق و موارد روشن از حقیقت را که من والهدا و اون که از عامل هدایت راه نمایی برای انسانها معین ساختند اون را کتمان می کنند در اینجا خود قرآن مشخص می کند که این کتمان کنندگان دوستان جاهل نیستند دشمنان دانا هستند و اگر دوستان جاهل توجه داشته باشند خود آنها هم سر از عالمانه و آگاهانه حقیقت رو زیر پا در می درمی‌آورند چرا می‌فرماید من بعد ما بگناح الناس الف کتاب بعد از اون که ما برای انسان ها دادیم بیان کردیم در کتاب مشخص ساختیم یک زمان بنده نسبت به یک مسئله اظهار نظری می کنم شما که اهل فنید و صاحب نظر متوجه می شمید. من خطا کردم اشتباه کردم ناهر گفتم ولی مقداری که با من صحبت می کنید من متوجه می شوم که نسبت به این امر جاهلم حطلیم نظر شما می و تشکر و غدانی هم می کنم اختلاف نظر بند با شما نادانی و جهالت من بوده است ولی وقتی شما میبینید من حقی را انکار میکنم بر باطلی اصرار میبردم شروع میکنید به توضیح دادن و استدلال کردن بعد از اندکی متوجه میشدید من نمیخواهم بپذیرم قذیرم دارم لجوازی میکنم سوءنیت دارم غرض و مرضی در کارم به همین جهت حتی در بحث امر به معروف و نحی از منکر خوبه دادن یکی از شرایط امر معروف و نحی از منکر این است که اگر برای شما ثابت شد طرف مقرده و نمیخواهد خواهد به به یک شرائطی از شما سلب مسئولیت می شود یعنی نمی خواهد قبول کند نه اینکه جاهل به مسئله اونجا تکلیف به صورت دیگری تجلی یابد و تغییر می کند قرآن بیان می دارد من بعد بعد از اون که ما بیاننا ناپسل کتاب در کتاب برای اینها تبیین کردیم روشن کردیم نشون دادیم ولی باز هم میخوان از حقیقت برگردند کتمان کنند، مخفی کنند و بپوشانند این یک رسمت آیه که نشون می حتی کسانی که با توجه با آنکه که هر چیش حق را کتمان می کنن. خدا در مقابل این مردم چه می ادامه آیه و یلعنهم لائنون اولائک یلعنهم الله و یلعنهم لائنون آیه‌ای که دیروز خوندم سوره مائده، ان آیت بفرمایید اون آیه و این آیه. گفتم خدا را که به بنی اسرائیل چه فرمود وقتی حق رو دادیم کتمان حق کردند. تحریف کلام خدا نمودن من اونها را لعنت کردم خدا فربود لعنت کردن یعنی از رحمت خودم دور ساختم یکی از واردترین مصادر رحمت خدا هدایت خدا شامل آن مردم شدن است لذا از اسماء و القاب و صفات پیغمبر اسلام رحمتا للالامین یا رحمت الله الواسعه اگر خدا اینها را دور می کند یعنی از موابد دین، از ثمرات هدایت از نتایج بهره از کتاب و امام و هدایت دور می شود اگر کتاب و پیغمبر نیاید که ما را هدایت کند در اثر هدایت به سرمنزل مقصود برسیم وقتی کتمان حقیقت کردیم خدا ما را لعن می کند صریح آیست خدا ما را لعن می کند یعنی ما را از رحمت و عنایت و برخورداری از مواحب دینش جدای نماید لذا اگر چارده در, در تاریخ اسلام برای ملت مسلمان این سؤال مطرح می شود چه شد مدینه فاضله اسلامی مشاهده نشد چه شد اون همه سامران و مندی ها که قرآن کریم داد پیغمبر وعده داد خدا در قرآن به ما وعده داده این دین بالاترین است این مکتب ارزنده است و شما در سایه این مکتب جامعهی پیدا می که فرشتگان برده می و فرشتگان در مقابل شما کرنش می کنن. چرا اون جامعه نه در زمان بنی اومگی پیدا شد نه در زمان بنی الاباب پیدا شد قرآن خود بیان می کند. اگر که حرف کنند اگر اختلاف نسبت به حق ایجاب کنند اگر اون گونه که حق میخواهد عمل نکنند نه تنها به اون نتیجه نمیرسند بلکه از رحمت پروردگار دور می شوند اولائک یلعنهم الله این مردم کسانی هستند که خدا اونا را لعنت میکند و انون همه اونهایی که به طبع خدا لحن صحیح دارن اینها رو لحن خواهند کرد پس می شود کتانی باشند که مستحب به لحن الهی شودند و از رحمت خدا دور گردند و دین خدا را کسمان کنند به صورت مظهوم کلی دارم ارزی کنند مثلاقی و به صورت موردی و موارد جزئی در تاریخ اسلام در این از خواهم کرد که شغونه کسمند کردن چگونه بر رو کنار زدن وقتی عزت زهران سلام الله علیه سوار در مرکب شبها در خانه سران مهاجر و انصار می آید و فریاد می زند مگر نبودید مگر شاهد نبودید مگه نشنیدید مگه ندیدید پدر من چه گفت چرا با دین پدر من بازی می آیا این مناشده و این گواه گرفتن و عدم همکاری و همیاری مردم صدر اسلام تا بدون جا که زهرا سلام الله علیه را وادار می کند که وسیحیت کند شباده مرا دفت کن و احدی را آدار مخاب تا اعتراض من در تاریخ واقعی بماند این اعتراض نسبت به نماز نخوندن مسلمون های صدر اسلام بوده؟ صفوف نماز جماعت که فشرده با منظم تشکیل می شدن. آیا این اعتراض زهران سلام الله علیها نسبت به روزه نگرفتن و قرآن نخوندن بود اینها رو که مفصل داشتن یا بگویید نوزد الله زهرا سلام الله علیها احساسی عاطفی بوده است در رابطه با مسائل شخصی زندگی که نوصی داشت همسرش به قدرت رسید همسر خلیفه زمان گردد نعوذ بالله بر مبنای مقام طلبی و دنیا دوستی آتفی و احساسی شده است و این گونه دستور داده است کدوم محقق منصفه حتی غیر مسلمان می تواند این سخن را بگوید زیرا قرآن خلافش را می گه مگر قرآن نمی گوید اینا آفینا کلکاو سر سسل لربدکا ونهر اینا چان اکهو بل افتر این است که توی تیغمبر با همه عظمتی که داری لولاف لما خلفتال افلاف وقتی ما صحرا رو به تو دادیم میگیم خیر کثیر برای تو تو به شکرانه چون این دختری فتل لربد که من هر برو نانازه شکر بکن که زهرا به تو دادی برو غربانی کن که تو زهرا داری اگر پیغمبر دست زهرا را میبوسد ابوها پداها و هیه عم ها او مادر پدرش هست یعنی میخواست بشناسانه جسم مرا که زهرا است، مادر جسمی من امنه است مکتب مرا دوباره زهرا میزاید و زنده میکند مادر مکتبی من زهرا میشود مگر پیغمبر فریاد نزد ان الله غضب زوال غضب فاطمه و غضب رضاها غضب فاطمه خدا پس این اعتراض فاطمه اعتراض نسبت به رو دارن می میکنن از نه چیز دیگر اعتراض بر اینه که عمود خیمه اسلامی رو دارن می شکنن و لذا بگذاری من هم لعن کنم دور میشم دور شدن زهرا از ما به یک معنا لحن زهراف به ما سلام الله علیه و چه لحنی از این بالاقر که از مواحب اولیان الهی برخوردار نشدیم سریح برآنه باد شاهد در این عمر سوره مبارکه آل امران آیه حداد و یک. یا اهل کتاب این روز کاره کردم این آیه رو فقط یا اهل کتاب لما تنبسون الحق بالباطل وتجتمون الحق وانتم تعلمون پس می شود به صورت کلی مفهومی بحث کنیم اهل کتاب باشد و انتون تعلمونم باشد بدانن هر چیش ولی کتمان حق کنند پس چرا قرآن می یا اهل کتاب لمت قلب سون الحق و چرا حق باطل رو به هم می لباس باطل به تن حق می کنید. لباس حق به تن باطل می کنید باطل رو در ظاهر حق جلوه می دید حق رو به صورت باطل به خورده مردم میدین و تکتمون الحق حق را کتمان میکنی آجکار نمیشازی و انتون تعلمون شما میدونید حق چیه اما دارید این کار میکنید پس این کار نیشه بشه. سوره بقره آیه شماره چهل و دو ولا تلبس الهق و تکتمون الحق و انتون تعلمون با آیه نوزه آن امران با هم دیگه مقایسته با آیه افتادیه که آن امران با هم دیگه مقایسته کنید آیه افتادویه چی فرمون؟ یا احلال الكتاب لمت از رسون الحساب الباطل چرا این کار میکنید؟ پس این کار رو, رو میکنند در آیه 42 بقره داره پیشوینی که بناط بکنن میکنه میگه نکنید پس معلوم بعد از اون اهل کتاب را اگر یهودیان بگیریم مسیحیان بگیریم که حقایق اسلام را که در تورات و انجیل آمده بود نفی کردند و نگذاشتن مردم بفهمند در سوره بقره کتاب میکند به کسانی که بنا این کار را بکنن لا صلح الحق بالباطل نکنید این کار را یعنی که این آیه من هم مخاطب خدا مخ... الان مخاطب خدا هستم ممکنه من در حد توانم قلمم گفتارم حق رو با باطل بیا خدا فریاد می جند لایتن به صلحت باطل نکنید این کار را اگر این کارو کردی چه می شکنید جامعه رو مستحق لعن الهی می کنید ای که مستحق لعن الهی شود یک مشکلات ظاهری یک مشکلات باطلی مشکلات ظاهری با اراده به موقع نمی آید برکت حرز می شود صفاوت سن نیت میرود دوستی آری شکن می شود ادامت ها میگردد دل حواری میگردد فضای گناه آماده می شود فضای گناه آماده شد مثل اتاقی که لود فضا رو گرفته در این اتاق دودا ریه سالم کار نمی کنه اندام بیمار می شود لذا افراد دلسوخته دعا می کنن دعا به اجابت نمی رسد حسول کافی خدا یا تو می دانی من نباعدم ننمبریم. نروحانیم فقط و فقط عنوان کوچکترین شاگرد مکتب امام صادق در مکتب تشیع می که حقائق مکتب امام است و مکتب علی و زهران در چه و من ودفتی که ادعای شیعه می کنم چه کنم و در چه سکی هستم این در اصول کافی روایت پیغمبر فرمودن خداوند به شعیب به پیغمبر وعی برستان فرمود شعی به این مردم بگو بلایی ای می صد هزار بلاگیر می شوند هزار از بدها ها هزار از خوب ها اصول کافی از میکنند شاید به خدا عرض کرد خدا یا ها که معلوم خوبها چرا فرمود بدی بدها بده ها را میبینند و ساکتند و چیزی نمیگویند بدی بدها را می و ها را میبینند و ساکتند و چیزی نمیگویند بده ها مستحق بلایند به جهت بدیشون خوبها مستحق بلایند به جهت سکوتشون در مقابله بدی و تذکر ندادن ارشاد نکردن راهنمایی نکردن لذا لما تضلون الحق لا الباطل و و انتم, تعلمون. اینجا و انتم تعلمون یعنی شما ها میدونید شما ها متوجه چیه ولی یاد یعنی نکنید این کار رو در سوره جاتیه بحث قرآنی براتت داره فضیلت داره توجه بشه اگر بنده میخواستم تمام این ده روز رو از قرآن به این مطلب خدمتون بحث کنم آیات بحث میکنه و می‌شد ولی من سوره جاسیه و یک دو آیمت سوره هود میخونم بحث قرآنی کافی فرصت امروز قسمتی هم میخوام از روایت بخونم فردا ان بحث روایت رو تکمیل کنم بعد وارد بحث تاریخ بشام به صورت کلی وقتی ما به این مساله نگاه میکنیم. سوره جاتی آیات شنگده و هیمده درست مضمون آیاتی که قبلنم خوندم با این تطافق میکنه و دبست آتینا بنی اسرائیل علی کتاب و بنی حکم و نبوه همانا ما به بنی اسرائیل کتاب دادیم قدرت حکومت دادیم حکم دادیم نبوهت دادیم پیغمبر مثل موسا دیگران برنگیختیم و رزقنا امنت حیبات چه روزی های خوبی براشون مقرر کردیم و فضاللاهم علان الامی اونا رو فضیلت بخشیدیم بالا بردیم دیدن که در سایه پیروبی عزت موسی و قبول کتاب خدا چه عزتی پیدا کردن به چه درجات رسیدند این آیه 16 حالا آیه 17 و آتیناهم بکناث من الامر آتینا هم به یناف من العمر ما نسبت به امر دیم کتاب خدا نشانی ها دادیم آشکار و روشن سمت تلفو ای از اینجا به بعد ومت تلفو پس اختلاف نکردن الا من بعد ما جاهم و علم بقیان بین هم مگر این که بعد از اون که ما فهمیدم آقا این هم دنباله مصارف تن آغاز شده دنبال موسا رفتن سران غرد شد دنبال موسا رفتن چه فضیلتی یافتن و رزقنا هم چگونه قرآن بیان کنه اما ومت تلفو من بعده ما جاهمون علم بقیان بعد از این که سرکشی باقی شدند طغیان، عبای نفس، قرد بردی ها منیت ها، شکسیت تلبی ها من مطرح شدن ها باعث شد گفتن حالا چون من مطرح هم تسمیم در این دین اختلاف می دازم اختلاف انداختن اما خدا چه می کند این نرد بکیت زیب یوم و یوم الغیامه فی ما و فیه هی یعنی در اون آیات اگر فرمود اینا رو در دنیا لحنت میکنیم کنیم بگه تازه قضا و سعزیشون ما مو از ماست نیکیش این فردای از کتاب عمالی شیخ مفید نقوم کنم یه حدیث هم اینجا بحثم از کنزم قرآنی دلی این حدیث توجه فرمایید. مرحوم شیخ مفید در عمالیش می نویسند امام صادق علیه السلام فرمودند زمان پیغمبری از انبیاء گذشته اسم نمی کی و کجا بوده یه شخصی به دروغ دایین رو کرد ادهی رو فرید جمعیتی رو مرید خود را بعد از مدتی فشیمان شد مریدان رو جمع کرد و با اونها گفت من اشتباه کردم پیغمبر نیستم به پیغمبر زمان مراجعه کنید برخی از موریدها گفتن نه ایشون داره ما رو امتحان میکنه نه خیلی ما شما رو پیغمبر قبول داریم شما هر چه فریاد بزن رفتن رفت زنگیری به گردن انداخت و بیابان شروع کرد نامه‌زدن خدا یا منو ببست منو بیام مر اشتباه کردم بندگان تو رو منحرف ساختم از دین حق جدا کردم ایمان صادق به نقل مرحوم شیخ مفید در امالی نال می کند خدا به پیغمبر زمان و فرستاد برو به این بنده من بگو اگر اونقدر ناله بزنی بند از بند استخونات جدا بشه توبت رو نمیپذیرم مگر اون که هر که را گمراه کرده ای هدایت کنی و اگر در گمراهی مرده زنده کنی و هدایتش کنی مگر از ازلال مردم مگر گمراه کردن مردم مگر دین خدا رو در او اختلاف انداختن مگر دین خدا رو لوت کردن مگر دین خدا رو بد معرفی کردن است. که خدا سریح در این آیه می وقتی اونها چنین کردن من بعد ما جاهم العلم بقیان از روی بقیه که بینهم ان این نرب بکیقزی بین هم یاوم القیامه اون روزی که لا ینسه امام ولا بنون الا من اطلاب طلب سلیم شاهدی بازگذراف از قرآن کریم در سوره خود به یک بیان دیگر در این رابطه آیات شماره 116 و 117 سوره خود این دو آیه را منایت کسرمایید بحث قرآنی را اکتفا میکنم سلولا کان من القرون من قبل کم خداوند در این آیه سخن از عمر قبلی دارد سلولا کانه من, من قبلكم اولو بقیت اولو یعنی صاحبان دارندگان مثل اولو الامر که بزرح میکنیم بقیت باقی مونده این کنایه ایست در زبان عربی دارندگان فضیلت های گذشته یعنی اولو فضل یعنی ارزندگان یعنی اون افرادی که از گذشته با شخصیت بودن اگر یک همچه سوابغه مثل این که شما میگید سوابغ علمی دارد سوابغ مثلا اخلاقی دارد سوابغ چنین و چنان دارد یعنی ارزندگان به یه تحبیر بگم سلولا تان من القرون من قبلكم اولو بدیتن ینهاون انفصاد سل ارزه الا زلیلن من من انجینا منهم فتبه الذين ظلم I'm ما اطرفو فیهه و قانون مجرمین و آیه بعد و ما کان رب یحلکن غرا و ظلمن و احلها مصلحون همه اون آیاتی که خوندم نتیجه گیریش در این دعایه شما از آن میتونید انایت بفهمیدیم اگر در قرون بزرسه یک افراد ارزنده ای نبودن ینهاون یعنی فساد فلرض که در روی زمین از بدیه از فف... فساد باز نمی داشتند به طلب اصلاح میون ما کسانی که از امام حسین تبعیت میکنن طبق این آیه شریف آیه شریفه ین هون عن الفساد یعنی کسانی که از فساد باز بدارن الا قلیلا نبودن مگر یه عده اندک لمن انجینا منهم که ما این عده رو نجات دادیم یعنی اکثریت اون بال سشاد رفتن و تبع لذین از ظلمو و اون اکثریت طبعیت کردن کسانی را که ظالم بودن ما اطرفوفی که به تامرانی و خوشبزرانی و مسائل دنیاویشون بپردازند و کانو مجرمی خطاقار و مجرم بودن و ما تانرد بکل یحلکل غرا به زلمن خدا مردم هیچ بریهی رو هر وردگار تو هیچ دستب و گروه و جمع و مردم کشور و مملکت و زمین و قاره ایران نابهق و ظالمانه حلاق نمی کند و اهلا ها اگر اهلش مسلح باشند یعنی اگر اهلش مسلح نباشند خدا بلا رو شامرهان اونها می کند و این بلا رو در رابطه با چی بیان میدارد در رابطه کسانی که یعنی ها اونه انفصاد می در رابطه با مردمی که حقائق رو به شکل دیگری در میارن اینا مخایم خودمی در قرآن کریم به صورت جزئیش هم داریم که اگر سود ادعا پس یک از نظر قران کریم آیات بسیاری داریم که قران می میکند ممکن است پیروان ادیان معصد به کتب الهی بر مبنای شیطنت بر مبنای خوشگذرانی و امیال بر مبنای تعلقات چند روزه دنیوی کلام خدا را تعریف کنند حق را تشویش کنند اختلاف در دین بیان دازن. مردم را از حقیقت دینی باز بدارن اینو این را قرآن به این روایات فعلا فقط از منابع اهل سنت میکنم صحیح بخاری جلد هشت باب فلحوز صحیح بخاری جلد نه، باب الفتن حدیث شماره یک در هر دو جا نقل شده انایت داری حدیث مثل کتاب سی بخاری نقل می کند اطماع بن تعدی بکر نقل می کند قالت قال نبی پیغمبر فرمود اینی علال حوض حتی انظر من یرد و تسیی خضات صدونی فبول و یارب من عمتی س غاب حال شارتما عمل والله ما برحو على خانم بکنید اگه پیغمبر پرمود من در کنار کو میستم میان دسته دسته از امت منو جدا میکنن میبرن به سمت جهنم و من میگم تعقول میگویم رب منی و من امتی خیلاش از اللہ الهیلالله میگن اینا اظهار به اسلام میکنن اینا از من هست امت من هست سیغال گفته میشود از طرف خدا در کنار که او سر به من پیغمبر ندا دردادی میشود حل تمام ما عملو بعدک میدونی بعد از اینا چی کردن؟ بعد از توی پیغمبر این مردم والله به خدا قسم ما برهو یرجون علا عقاب کن لا یزال و مدام بعد تو اینا بر میگشتن به دوران جاهلیت همون گونه که در اون آیه شریفه سوره آن امران اومده او <تصفيق> بکن. آگه اگر اما تا اون وقت انقلاب تو الا اعقابتون آیا یک پیغمبر از میان شما برود چه به مرگ طبیعی چه اگر شهید شود انقلاب تو الا اعقابتون برمیگردید همون روحیات جاهلیت همون تفکر قبل از اسلام آقا اگر قبل از پیغمبر اسلام بت می‌ذاشتن یکی که سنگ یا چوب و می اومدن بو تو می‌فرستیدن اما با اگر از اسلام وقتی بنا شد دین لوت شود کار به جایی رسید که بنا شد خدیثه شراب خار میمون باز را به یک معنا بفرستد یعنی همون گونه که قرآن بیان میکنه اگر امت بنی اسرائیل قبل از آمدن حضرت موسی تران رو میفرستیدند، بعد از آمدن حضرت موسی وقتی کتمان حض کردن مستحق لحن خدا شدن گوشانه رو آخرستید این نیستن قرآن رضا حدیث هم داره بیان میکنه ولی بله پس میشه ته صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل کند که پیغمبر فرمودند که من در کنار حوضش دادم فوج فوج از امت منو به سوی جهنم میبرند من میگم اینا مسلمون مگه نیستند ندامی آده از طرف پروردگار عالم نمیدونی اینا چه کردن یک حدیث دیگر باز از صحیح بخاری جد پنج باز غزه به مناسبت غزبه حدیبی یه مطالبی نقل میکند میرسه به برای ابن آزب برای ابن آزب یکی از صحابی زبان پیغمبر است از جمله کتانی که در جریان سقیطه بیعت نکرد اون که بیعت نکردن ایستادن یکیشم هم برای ابن آزبه. خب به عنوان صحابی پیغمبر شیعه سنی قبولش داره لذا در صحیح بخاری از او روایت نقل میکند در صحیح بخاری جلد پنج بعد غزره حدیبیه میگوید شخصی به برای ابن آزب رسید گوه خوشافحان تو که تحاوی پیغمبری تو که با پیغمبر بودی تو که پیغمبر رو دیدی تو که روایات از پیغمبر زیاد در سینه داری قاله گفت برای به من این رو گفت ابن اخی اینکلا تدری ما تدری ما احدثنا بعد پسر برادرم خب برای سنش از او بیشتر بوده انسان کسی که مثلا همسنش ممکنه بگه برادرم اگه یه مقدار کچیکتر باشه ممکنه بگه فرزندم امو جان دایی جان این کناهی به اینه یب نهتی امو جانم پسر برادرم نمیدونید بعد شد چی یعنی فرض بفرمایید شما دو نفر با هم دیگه هایی دارید و با هم دیگه هایی داشتید، سوابق خاطراتی، مطالبی بعد از گذشت زمان کسی به شما می‌رسه میگه بله الحمدلله شما با فلانی چه مجالسی دور هم داشتید، چه گفت‌وشنودی داشتی؟ چه هایی داشتید، نگا خدا بیاورده حالا چه ببین کنار اون زمانو حالا ببین چی شد. داری این رو میگه می‌گسنی بخاری چی بوده که برای میگه یبنه اخی نکلا تدری ما عزتنا نمیدونی بعدش ما چه کردیم چه سر ما اومد و چه شد یه نمونه یه کمی برای روشن شدن بگم از سعی مسلم و مسند احمد همبل آوردن از اونم دوتا روایت میکنم مسند احمد جلد دو صفحه 23 و 26 میدونید احمد همبل رئیس یک از طرق تقریه احلسانت پنابله و مسندش هم دیگه جل کتابهای قدیمی بخاری جلد 2 صفحه 136 قال رسول الله پیغمبر از کنار خانه عایشه رد میشد فرمود منبک عایشه بر منبک عایشه کنار خانه عایشه رد میشد فقال کفر من منها هنا برادر صحیح بخاری میگه مسند احمد حنبل میگه مدرک خوندن کتابم آوردم حالا ازو کتابم باز براتون میخونم شاف مصر هم هست حسی الازهر مصر هم هست پیغمبر از کنار خانه عایشه رد شد و اشاره کرد با انگشت راس خو ها من عیشون و طلع اگرن شیطان شیطان از اینجا بیرون میاد و چه بلایی به سر امت من خواهد بود. حالا بعد از تاریخی از ما هم کرد پس شما شک میکنید شیعه میزنه تو سر صورتش میگه وا که بر اسلام چه آوردن و امام حسین کارش اونجا میرسه ماه چشماهر رو دست بگیره میگه اینم میرم خوهرم زینطان سواره بر مرکز شو هر که میخواد با من در این مسیر هم نفس بشه داد بزنه و فریاض بزنه و اسلام ها ببینید کار به کجا رسیده اجازه بدید از صحیح این چاپی که بنده دارم جلد هفته هست بسمت هفتم، صفحه سد و و یک که هست از تحریز علاقه للخوارش در قسمت کتاب الجهاد صحیح مسلم اون قسمتی که راجب تحرید بر قتل خوارج من یک حدیث رو که ایشون نقل میکنه قال علی رضی الله عنه ای یوهناس انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم منو اینجا نوشته میکنم و صدرا خب میدونید قال عرض میکنه و جالب اینه که در صحیح بخاری یه باب داره از پیغمبر فرستاد چگونه صلوات برسیم پیغمبر فرمود بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد خودش نصب میکنه پیغمبر فرمود آل اضافه کرد بعد هر خودش نصب میکنه میگه صلی الله علیه و سلم اینو به بعد بعضی از مخاطبین اهل فن ولادتی سنی در ایران و خارج از ایران وقتی کتاب بردارم چی میگی؟ تابه‌نم یا خودش نظر میکنه. اخه بابا مسئولیت اهل بیت چقدر؟ وقتی که میگم اصلاً چرا کتاب دارم میگم خودش میگه پیغمبر اینجوری گفته. کی ای خاط دیگه الان اینجوری شده دیگه یعنی چی اینجوری شده؟ اگه باطل ببین داد بزنید بگید. رضا خدا جزای خیر بده. امثال دکتر حسنی داوود. دکتر عبدالسلام عبدالمصود ساله الوارد دکتر ساله الواردانی، دکتر تیجانی، سید علی اجب، دکتر حسین المحمّدی آل راذاه الهی نک تو ذهنم بود فقط در همین 34 سال اخیر چه نوشتن و گفتن خب بله اومدن اعلام کردند. حالا نمونه‌های شده شد کتاباشونو میارم میخونم نه آقا ما کلاه سرمون گذاشتن اونام این دیشنا کلاه سرمون گذاشتن فرضا ما رد اسلام واقعی جدا کردن و دکتر ساده البردانی نویسنده معاصر قبیه مصری در کتاب عصب و سیاسته نگ میکنه چاپ مصر میگه علی جان است و از بخواییم قرنها از تو جدا بودیم بلا سر ما اومد میشه حالا که به سوی تو اومدیم ما ارزش های جامعه اسلامی رو که از اسلام انتظار داشتیم ببینیم خدای در اولو به درجات مرحوم علامه یمینی بیافتاید که میفرموز ما امروز باید یک نصع غیری کار کنیم و بنویسیم و بحث کنیم و بگوییم دنیا دنیای فکره دنیای علم دنیای تحقیق و تتبع و بررسی بررسی کنیم و نشون نشوندیم و سرمونو به دیوار نزشیم زور بگیم ما با مدرک حرف می‌زنیم قال علی جن علیه السلام اینجا در علی جن رضی الله عنه ای یوحنا انی تو رسول الله سی مسلم قبول کرده روایتو میگه علی فرمود من از پیغمبر دم. یا کل می‌فرمود یک خروج من امتی. یک قومی که آمده من پیدا میشن خارج میشن یا قرآن قرآن قرآن لیس لی سر قرآن بشی که قرآن کندن شما در مقابل چیزی نیست. در اوه چقدر برع میکنن؟ شب روز صبح پر را شیرین کنند قشان گم خوندن شما در مقابل اونات چیزی نیست ولا صلاتكم، ال صلاتهم هم بشید ولا سیاب بکن ال سیام هم بشید نه شما رو حساب میارند نه روز شما رو به حساب میارند میارن او چقدر نبخشون یقر او ن نقرآ. یا سافونا انه لحم قران و خیال میکنن فقط قران مال اوناست اونان که مخاطب خدا هستن و ها و علیهم و حال اون که اونها علیه قران است شیخ مصطفی کسانی پیدا میشن قرآنی میخونن که شما برقشنجین اوی تورید بخونید نمازی میخونن که نماز شما در مقابل نماز اونها به حساب نمیارد خیلی هم مرتبه منظم چه فلان اما تطورشون اینه که قرآن مال اونا و خوبه علیه قرآن بر علیه اونا, اونا بر علیه قرآن کجا به ذا هم، هن هم، نمازشون و اون قران خوندنشون و اینها فقط از همین گلو انجرافت از دل نشد ریشه نشه ظاهریه یمروگون من الاسلام کما یمروگ تسمن نرمیه از اسلام خارج میشن حقیقت اسلام رو ندارن مثل کی بی که از تمام داره میفر میره بیرون همین که میگه داره اینجا این یکی حالا مفصل در این زمینه داره حالا تو ادامه داره من... به مناسبت که چند جا من جمله در صفحه پونزه از جلد سوم نرمی میکنه ان عبی سعيد الخضری این عبا بکر جا الى رسول الله صلی اللہ علیه وسلم فقال یا رسول الله اینی مررت و بوابی کذا و کذا فاذا اذا رجلون متخلشه حسنا لحی ایسا ای فقال الله صلی اللہ علیه وسلم از هم علیه فرق دالو میشه عبوبک اومد میشه پیغمبر گفت یه با شدم میشدم یاد نمیدیدم خیلی خشقیافه خیلی فلان چه با خشوق داشت نماز میخوند مصند احمد احمد جلد سه سفه پونزده سوالا پیغمبر فرمود اجهب الیه برو به سوش فقطاله رو بکش پیغمبر فرمود برو بکش آلا فزهبه علیه عبوبکر فلم ما رآهو علا تلکالهاد کره هن یفتلهو دقیقی دید این شجور نماز بود خونه سردیده است داره ذکر میگه کراحت تیدا کرد بکشه نکش فرج عیلی رسول الله برگست به سوی پیغمبر سبال النبی صلی اللہ علیه وسلم آن شما میگم لِعُمر این بار پیغادر با عمر برمود ازعب صبح رو فستالو او رو بکش فزهب عمر فر رعاه و علا تلکالهان علا تی رعاه و عبو بکر عمر دید که اون آقا داره همون جوری که عبوبهر دیده بود نماز میکنه و چقدر مثلا با سمحنینه عبادت میکنه اونها دید سکره هنگ صلحون اون اونم اکران کرده از بکشه ترجعه برگشت سقاله یا رسول الله اینی رئیس روی و صدی من دیدم داره نماز میخونه متخشه انچه چقدر خشیت داره یعنی پیغمبر نوزوه الله نمیفهمی که اون فرق این نماز چه نمازیه این عبادت چه عبادتیه اینا دارم به پیغمبر درست میدن آخه نماز نشونی خون چنین و چنام بود فکره احتران افتاله بود تا من اقرار دارم از یکی رو بکشم. پس یا علی پیغمبر بر علی فرمود تبر برو بکش. پس همه علیان سلام گره. علی را نیرو نمی رفته بود. فرجه علیون علی برگشت فقال یا رسول الله این نهولم گره. امیرالمومنین به پیغمبر رفت کرد من او رو ندیدم. فقال النبی پیغمبر فرمودن این و لاسهادا. این آقا و از خوابش یک رعون القران لا داو از تراویهم اینا قران میخوان فقط از حنجره یمرقون من الدین کما یمرق صح من الرمیه اون که اونجا داشت اینجا از دین خارج میشن گروه گروه مثل تیری که از تمام دونه دونه پرتاب میشه میره بیرون و اگر گوش کرده بودید و رو کشته بودید در دین من خیلی از مشکلات جلوگیری میشد این آقا رهبر خوارج ز سودیه است اینجا نهبو میکنه. میکنه. میکنه خب پس اینم که دسته مسلم و مسند احمد میگه پیغمبر در زمان خودش فرمود کسانی در دین من هستن قرآن میخونن روزه میگیرن نماز میخونن ولی از دین خارج میشن مثل چیری که داره از کمان خارج میشه و دسته دسته از دین خارج میکنن گول زواهرشون رو نخورید حالا روز جمعه فقط یکی که از حضرت زهرا سلام الله علیه آب بخونن بریم کربلا انشاءالله فردا عمری بود این بحث عادیس رو که پیگیری کردم فرمایش حضرت امیر و حضرت زهرا رو در این زمینه اشاره میکنن فقط یه دو ست شعر از از زهرا رو امروز میگم خطبه ها بینا بمونه فردا همه نوشته من مدرکی که اینجا نرق میکنم شرح ابن عبل حدید معتدلی و همچنین بلاغت و ابن حجر هر دو از بزرگانه اهل سنتا چیه که همه نوشته؟ میگه وقتی حضرت زهرا سلام علیه ها خطوه فدک رو خود تموم شد اطمام حجت کرد بعد رفتن به طرف غبر پیغمبر اشاره کردن چند به شعر خوندن قد کان بعدک انباعون و هنبستتون لکنت شاهدها لم تکسر بود. کان بعد که ای پیغمبر بعد از تو خبرهایی امور مشروشی آلوندگیه رو دیدیم لوکن تشاهده ها اگه تو بودی با یه مقداری دشواری کمتر بود سختی کمتر بود اما تو هم نیستی عبدت رجال و لنا نجواد شدوره آشکار کردن یه مردمی کینه های درونی شون راجع به ما و کینهایی که تو سنه هاسان نگه داشته بودندن و منتظر بودند در یه فرصتی برای ما آشکار کنند بدد آشکار کردند. لما غذی و حالت دو نکن پست بود وقتی که تو از دنیا رفتی و دو در میان ما نبودی و خااص ها بین تو و ما خواهر شد. تجهمتنا رجانون و تف خجوم آوردن مردم به سوی ما. هجوم یعنی حجمه کردن به ما حمله کردن و ما را ضعیف کردند ما را کوچک شمردند از قطعا نا و نحن نیا و نیا بود منطقه تسبو وقتی که ما را اینجوری مقبون کرده و حقوق ما را زایستان دارد این هم که بیان حضرت زهرا به صورت زبان شعر بعد از اون وقت امام حسین علیه السلام داشت میزنه انما خرجت لطلب الاسلام جدی جدي اسلام باید به شکل خاصی صورت بگیره حالا داره وارد کربلا میشه ورود کربلا یه تیکه از سوره کربلا بگم و از کربلا در اون مجلسی نظر میکنه تو راهی که آقا عبدالله می اومد کنار جاده با یه فاصلهی تو مزرعه یه مشغول کار بودن که وقتی کاروانی داره میاد هنوز حج ناز تموم شده باشه زود به زودی کاروان چی شده داره میاد که در با تعجب به پسر جوونش گفت بابا جبور کنار جاده از اینا پاس چی شده چرا زود میاد نواد عمل هست جوون شده باشه به این زودی به اینجا بررسد پسر اومد کنار جاده دید یه عده سوار بر مرکز آرام ساکت مؤدب، از هر که شما کی هستی چرا زود اومده با یک و با انگشت اشاره می به آخرین فرد. معلوم خود عبی عبدالله علیه سلام پشتر همه می اومده به آخرین فرد که هلیشون سوال کنید فهمید که باید از آقا سات هم نمی دونه کی هست. منتظر شد آخرین فرد آقا برسه آقا ترسیدن سبغت سلام بعد از اینکه که جوان بگه سلام کرده این بیان عبی عبدالله یا حسین ده رو به جان مادر زهران جوان دلی یک برد طورب شش ماه دلی یک یه نگاهی هم به دل ما بسید یه گوشه یه چشمی هم به قلبها همه کارا رو تموم می نمیدونم به ما حسین با این تمام نده کن چیکر نگاه می‌کرد و گریه می شود یه دفعه ماب حسین سرمود جوا من حسین پسر فاطمه من حسین پسر فاطمه هم میرم کوفه حجم و نیمه کاره رها کردن برو به خانوادت به اگه دوست دارن با من زیان دید پسر استاده که کن نمیخوره کاروانم رد شد آخه چی شده اومد جلو به پسرم نیزور نگاه میکنه گریادو کنه خیال کردیم کاروان به پسر مثلا تو این کرده شمشیر ایشون دفتی و پسر به زمان در آمد نه بابا این اصلا پسر بیغمبرو بابا برده بابا اجازه باش برم یا نه پدر گفت برو مادر یه نگاهی به پدر کرد گفت زوار پسر برمانه مادر و پسرم پدرم دنبال حرکت کردن یکی از شاهده روز عاشورا این جوانه با یک نگاه کار شد اون چه که بنابود بشد حالا امروز وارد کربلا شدند. چه کربلایی؟ خیمه ها رو زدن خیمه های ناموس دهل زنان رو وسط خیمه‌های های ها اطراف خیمه افتاب اطراف خیمه زینب زدن به خیمه امام حسین علیه السلام زینب با امام حسین حساب دیگری داره حتی صاحب کتاب مدین از اون معاجز مینویسه وقتی زینب به دنیا اومد گریه میکرد اون داغل و بقل پیغمبر دادن گریه میکرد بقل امام حسین گریه میکرد ازت زهرا گریه میکرد بقل امیر المؤمنین گریه میکرد پیغمبر سمود حسین کچلو رو بیاره. حسین کوچولو خیلی هم سن نشونید تا تشم زهنی به ما حسین اونان لبخند در یعنی یک رابطه خاصی خانسی ورقراره حالا این خیمه کنار همه از امروز کنار همه تا شب آیشورا شب آیشورا یه وقت این پرده خیمه حسین رو کنار زد نگاهی کرد دید حسین تو خیمه نیست اومد تو خیمه اول دید نیست تو خیمه عدی اکبر نیست تو خیمه غاسب آشوفه سراسیمه اومد بیرون خیمه ها دید تو دامنه که شبه هی میشه نگاه نزدیک در دید حسین تو بیامونا داره بودتهای خواه رو میکنه چرا که من شب اینجا هستم ویکنی در این سرزمین بچه های منو من خیمه ها رو با آتش می کشن این بودتهای خارمی کنن هم بچه هم پاهاشون گیر نکنه هم وقتی خیام آتش گرفی شوله های آتش رو بالاتر نبره یا و عبدالله تو به فکر بچه ها و خیام آتش و اینها بودی هم با اصل یاد نبودی بله بودی در عالم معنا وقتی زینب خواست باره و چطور بشه میگه کربلا زمانی که وارد شدم این آن اصل و خوصرین زیر بغل اما گره اکبر و قاسم دورنده گیران ولی یا حسین اکنون در مقابل نام قربان